تا حالا همچه آبروریزی ندیده بودی تو هم خبرها را شنیده ای شیخ یاسین کسی که با هیجان این را پرسید عبدالله سبتفروش پدر یکی از طلبهایم بود بعد اضافه کرد مولوی را دیروز در محله یهودی ها توی یک میخانه دیدند گفتم معلوم است که مگر می شود که نشنیده باشم اما به اندازه شما تعجب نکردم از این خبر چه انتظاری دارید از مردی که زنش قبلاً مسیحی بوده و نزدیکترین دوستش از زندیق هاست مگر میشد طور دیگری بشود عبدالله سرش را تکان داد و گفت حق داری آقا از ازل معلوم بوده که این طور میشوند ملتفت نبودیم کاش میفهمیدیم کسانی که از کنارمان میگذشتند می ایستادند و به حرفهایمان گوش میدادند همه وحشت کرده بودند نمیدانستند چه کنند؟ یکی گفت مولوی را دیگر به مسجد اعظم راه ندهیم. نگذاریم آنجا موعظه کند. دیگری گفت بیاید جلوه چشم همه توبه کند. قول بدهد که دیگر به نجسی دست نمیزند وگرنه اصلا نبخشیمش. گفتم اینها حرف مفت است. باید هم شمس را هم مولوی را فورا از این شهر بیرون کرد به نظر من بهتر است بنشینید و در این باره صحبت کنید که چطور باید آنها را نفی بلد کرد سرشان را با حرارت تکان دادند دیدم حرف به درازا می کشد. گفتم درسم در مدرسه دیر می شود و را هم را کشیدم و رفتم از قبل حدث می زدم که مولوی جنبهی غیر قابل اعتماد دارد. منتظر بودم. میدانستم که روزی پتش روی آب می افتد. اما راستش من هم فکر نمی کردم تا این حد پیش برود. شراب گرفتنش از میخانه ها مرا هم به حیرت انداخت. ای عیاش! میگویند شمس است که باعث شده مولوی به این حال روز بیفتد. اگر شمس نباشد مولوی فورا به حال اولش برمیگردد من اما این طور فکر نمیکنم. شمس آدم ناراحتی است با افکار منحرف در این شکی ندارم روی مولوی تاثیر بدی دارد این هم درست اما مسئله اصلی این است. چرا زور شمس نمیرسد دیگر عالمها را از راه بدر کند؟ مثلا چرا بر من تأثیری ندارد؟ پیغمبرمان بیهوده نگفته است. شخص به دین دوستش است. از این رو دقت کند با که دوست می شود؟ پس مولوی چرا دقت نمی کند؟ لابد او هم از قبل آماده بوده به دامن کفر بیفتد در و تخته خوب با هم جور شده مولوی و شمس در اصل بیش از آنچه گمان میشد به همدیگر شبیهند میگویند شمس گفته تایفه علما در لکههای مرکب زندگی میکند تایفه صوفیان در ردهپاهای عشم. آخر این چه حرفی است معلوم است که به نظر شمس علما فقط حرف میزنند کارمان این است که احکام وضع کنیم و بعد روی کاغذ بیاوریم صوفی اما زندگی میکنند گیریم که این طور باشد خب مگر مولوی عالم نیست یا اینکه دیگر خودش را از ما نمیداند آه اگر این شمس بی اصل و نسب روزی به مجلس درسم بیاید با پشت دستم مثل مگس بیرونش میکنم به هیچ وجه اجازه دهم در حضورم دهانش را باز کند و چرت و پرت بگوید خب پس چرا مولوی همان کارها را میکند چرا همه کارهایی را که شمس میگوید مو به مو انجام میده چون که او هم از همان قماش است هر دوشان را از یک قواره بریدهاند. ایان و آشکار است. زنش که مسیحی است میگویند بعدا مسلمان شده. به من چه؟ مسیحیت توی خونش است به خون بچهاش هم منتقل می شود. متاسفانه. اهالی شهر خطر مسیحیت را آنقدر که لازم است جدی نمیگیرند میگویند با هم داریم زندگی میکنی خب چه عیبی دارد من هم هر دفعه که به آدمهایی اینقدر صاف و ساده بر برمیخورم میگویم مگر آب و روغن زیتون مخلوط میشود تا حالا دیده ای یک قطر آب با یک قطر روغن قاطی شود؟ وضعیت مسلمان ها و مسیحی ها هم همینطور است. ممکن است کنار هم زندگی کنند اما غیر ممکن است با هم یکی شود. مولوی از همان اول با غیر مسلمان ها نرم رفتار می کرد. کسی نیست که نداند مرتب به سومعهٔ خاریتون قدیس میرود و دعا میخواند آدم مسلمان آنجا چه کار دارد با راهب بزرگ سومعه رفیق گرمابه و گلستان است یعنی اینکه یا با کافرها رفاقت میکند یا با درویشهایی که در مسلمانیشان شک است همینها کافی بود تا مولوی در نظر من آدمی غیر قابل اعتماد باشد. اما این شمس تبریزی را هم که معلوم نیست تخم و ترکه مال کجاست، به خانه اش که راه داد دیگر پاک از راه حق منحرف شد. هر روز به طلبه هایم گوش زد می کنم بچه ها در مقابل شیطان هوشیار باشی. ابلیس هر لحظه ممکن است گولتان بزند و از راه سواب خارجتان کند شمس خود شیطان شامی است مطمئنن کار خودش بوده که مولوی را به میخانه فرستاده خدا میداند آن مرد بیچاره را چطور به این کار راضی کرده اما مگر هنر اصلی شیطان این نیست که آدم‌های با باشرف را از راه بدر کند و به طرف گناه سوق بدهد؟ از همان اول فهمیده بودم شمس چه جانور بی است. چه گستاخی می که حضرت پیغمبر را با آن بستامی صوفی یکلاقبا مقایسه کنید؟ مگر بستامی نبود که می گفت ستایش از آن من است. شعن من چه والاست. بعد هم بدون آنکه خجالت بکشد مگر نگفته بود آهنگری که نفسش را می کوبت منم. مردک کار را به جایی رسانده که گفته به تواف کعبه رفتم دیدم چعبه مرا تواف می کند. این چه مزخرفاتیست؟ است این چه جسارتی است اینها اگر کفر نیست پس چیست کسی که شمس تبریزی با چنین احترامی از او یاد میکند مردی است تا این حد فرومایه هرچه باشد خودش هم مثل بستامی از آن منافقهای نابکار است چه خوب که اهالی شهر سرانجام متوجه حقیقت شدهاند روز به روز تعداد کسانی که درباره گمراهی شمس حرف میزنند بیشتر میشود بعد چه چی چیزها که نمیگویند دربارش حتی خود من هم بعضی وقتها از چیزهایی که میشنوم به وحشت میافتم آدمها توی حمام توی میدان توی مزرعه، توی باغ و بستان، هرچه به دهنشان برسد، در باره شمس میگویند. راه میرفتم و به این چیزها فکر می کردم. برای همین دیرتر از همیشه به مدرسه رسیدم. فوری وارد اتاق درس شدم. اما هنوز یک قدم بر نداشته بودم که حس کردم اوضاع با همیشه فرق دارد طلبه هایم را روی زمین پهن کرده بودند و صف به صف چهار زانو روی زمین نشسته بودند هیچ یک رنگ برخ نداشت مثل بلبل توت خورده ساکت بودند یک دفعه متوجه ماجرا شدم یکی پای پنجره باز پشتش را به دیوار تکه داده و نشسته بود. مرد بیمو و بیریش و بیسبیلی که با تبسمی گستاخانه بر لب روبرویم نشسته بود، کسی نبود جز شمس تبریزی. از آن طرف اتاق صدایش را بلند کرد و گفت: سلام علیکم شیخ یاسی منتظرت بودیم. دیر کردیم لحظه تردید کردم، سلام بدهم یا ندهم. آخر سر سلام ندادم، در عوض به طرف طلبه برگشتم و از آنها بازخواست کردم. این مردک نحس اینجا چه کار دارد؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ هیچ کدام از طلبه جواب ندادند، همه حیران همه نگران بودند سکوت را خود شمس شکست با صدایی که بی احترامی از آن میبارید چشم در چشمم دوخت و گفت شاگردهایت را سرزنش نکن شیخ یاسین این فکر خودم بود امروز صبح داشتم از این طرف ها میگذشتم یک دفعه با خودم گفتم به این مدرسه سری بزنم سری بزنم و آدمی را که توی این شهر بیشتر از همه از من نفرت دارد زیارت بکنم ببینم حرفهایی را که پشت سرم میزند توی رویم هم میتواند بزند